سینا میرزایی صفت ابتدا میخواست که به نروژ برود. اما با اصرار و روی خوشی که یک استاد برزیلی به اون نشان داد راهی دانشگاه فدرال ریو دو جانی رو شد. اصلاستاد من تاتالو بود، تاتالو به شدامی نه امیر تاتالو، تاتالو. تاتالو که همچون پدر سینا استاد ریاضیات بود بعدها به مهمترین معلم زندگی او تبدیل شد. هرچند که ابتدا کمی سینا را اشتباهی گرفته بود. چون توی برزیل و توی زبان‌های لاتین هر اسمی که به آ خط میشه اسم دختر هستش من تمام نامه های قبولیم گرفته بودم کاره سفارت همون کرده بودم یعنی دیگه, دیگه تموم شده بود تا اون روز که من گفت عکس ها و مدارکتو بسیارات الکترونیک، بسیار ایمیل بر من بفرست اون تا اون موقفه میکرم من دختر هستم اکس تو دیدم دیدم کچلی اون موقع ریش پروفسوری و قول ایرانی ریشداری خیلی خیلی ناراحت شده بود ولی بعد چهار سال فکر کنم راضی بود دیگه بهتره که راضی باشه چیزی که برای من خیلی عجیب بود مهربانی بودش که من توی برزیل دیدم یعنی یه جوری برام من غیر عادی بودش یعنی یه چیزی که چرا اینقدر به من محبت میکنم حتی چند بار از یه چندتایشون پرسیدم یکیشون بهم گفت آره یه فرهنگی داریم برزی به نام فرهنگ... یه فرهنگ پرتغالیه که میگن وقتی با ما هستی از ما هستی فرق برشون نمیگه تو کجا اگه, اگه اینجا هستی و با ما داری زندگی میکنی دیگه یکی از ما هست مثل کرده من میگم با منی از منی و اتفاق زندگی من معاحت برزیل بود من هر چی که دارم از اومدنم به آمریکا به این گرین کارتی گرفتم با مقالاتی گویی که من تو برزیل دادم خونه خریدم با پول پیشتی که تو برزیل داشته من تو ایران بودم خونه نمیتوسم بخرم بابام برام خرید ولی من نمیتوسم بر خودم بخرم من رو گرفتم تو برزیل 18 نوامبر 2011 دیگه نمیخواستم برزیل باشم و دوست داشتم که بیام آمریکا یه فرصت پستاک پیدا کردم تو دانشگاه دلاور اولین استیت آمریکا هستش و بین واشنگتن دی سی و فیلادلفیا هستش اونجا من یه فرصت پستاک پیدا کردم و کلا قبل از اون همیشه تو موانسی دریا و کشتی و سکو و یا انرژی های نوع دریا مثل مونچ بودم ولی اینجا من برای اولین با با توربین های باد آشنا شدم اونجا خیلی اتفاقاتی در زندگی من افتاد اولین اتفاقی که افتاد این بودش که من قرار بودش که بعد دو سه ماه که ادانش دلابر هستم برم توی نشنال لبی در به نام انرل نشنال رینوبر انرژی لب همه کارها انجام شد همه وسالمو فرستادم همه کار هاغاز بازیاپ تا انجام شد دو سه روز قبل رفتن من از من پاسپورتمو خواستن یه کپی از پاسپورتمو خواستن دو روز قبل رفتم بهم گفتن تو نمیتونی بیای به خاطر اینکه ایرانی هستی و برای ایرانی ها و کره شمالی 6 ماه طول می‌کشه که آیا اجازه ورود به شما بدن یا ندهند این اولین شو که من بود در آمریکا و بعد از اونم استادم گفتی که من تو رو نمیخوام بر اینکه هدف این بوده که تو بتونی بری این نشنال لب و اونجا کار بکنی و ریسش بینی دو دوتا یعنی دانشگاه دلاور و نشنال لب کلورادو هستش بعد اون خیلی کم زندگی سخت شد یعنی <تصفح> به <تصفح> خاطر اینکه من تا سه چهار ماه بودم آمریکا و حالا با مننت به من گفته بود که اوکی من شش ماه دیگه میتونی پیش من باشی بعد اون دیگه خودت میتونی یا میخوایی برگردی برزیل، ایران یا هر جا بعد از اون شروع کردم به اقلاعی کردم و یه که دیگه تو دانشگاه خیلی بهتری بنامی یونیورسیتیت میشیگان من پیدا کردم ولی اتفاقی که توی اون یک سال دلاور شروع شد در معیی تغییری که در من ایجاد شدن این بودش که دیگه من نمیخواستم حالا دوزو من استاد دانشگاه بشم آخر هفته یعنی روزای جمعه ساعت سه تا چهار یه سمیناری دانشیده ما میذاشت و هر جمعه یه استادی از دانشگاه دلاور یا دانشگاه اصراف از دانشگاه مختلف تا دا مثلا سه ساعت چار ساعت پنج ساعت رانندگی میومدن و به مدت یک ساعت در مورد اون کارایی که تمام اون تحقیقاتی که بعض وقت تون سی سال چهل سال انجام داده بودن صحبت میکردن وقتی که اینا صحبت می‌کردم من خوابم و میدم همه اطرافیانم خیلی خواب‌آلودن یا منتظرن که زودتر تموم با... با... بایدم تو اون سمینار ما مثلا استاد من انتظار داشت من حتما اون یک ساعت رو باشم. وقتی که من می‌دیدم میدم بنده خدا داره تمام تلاشش رو می‌کنه و چقدر داره لذت می‌بره. که میگه آره من این معادله رو به این روش حل کردم یا هیچ کس میگفت نمیشه من تونستم و ما داریم مثلا ساعتمون رو نگاه می‌کنیم که کی تموم میشه. و چقدر برای من مثلا کسل کننده هستش گفتم یعنی واقعاً, واقعا یعنی اینه یعنی من میخوام یه روزی یه کسی مثل این بشم که آدم منتظر منتظرین بشن من که حرفم هم تموز. یا اصلا من این همه کار کنم که کلن حرف من بشه یک ساعت سی سال تحقیقات من خلاصه بشه در یک ساعت یعنی این هایی که دیدم احساس کردم که دیگه نمیخوام مستاد بشم و دلیل این دلیل که پستاک دوباره ما رفتم یکی اینکه که خب دانشگاه میشیگان بود خیلی برای که تا اون موقع چند سالم 29 سالم بود من 22 سالشو میخواستم دیگه همچین جایی باشم سوایی من دیگه راه دیگه نداشتم به خاطر ویزایی که داشتم و باید می... اگه میخواستم تو آمریکا بمونم که و میخواستم بمونم راه از پستاک بودن نداشتم و رفتم دانشگاه میشیگان و اون دو سال گرین کارت همو گرفتم. روزی که گرین کارت گرفتم همون روزش فرداش رفتم به واسطام گفتم که من دیگه خداحافظی میکنم از علم و دیگه نمیخوام تو دانشگاه بشم سینا در حوالی سی سالگی و در حالی که دو دوره فوق دکترا با موفقیت به پایان رسانده بود رویای استاد دانشگاه شدن را بوسید و به قول خودش از نرد بودن مطلق استفادهداد نهکی بودم ناراحت. جدی بس سینا اکنون مهندس فنی ارشد شرکت جنرال الکتریک در زمینه توربینهای های بادی است اما در آن دوران گذار مدت کوتاهی راننده اوبر شد بزرگترین آژانس تاکسیرانی آنلاین دنیا بود. 5 سالی که تو آمریکا بودم دیگه از یه کار واقعا لذت بردم کنم رانندگی اوبر بود آدم های مختلف رو میدیدم خیلی حرف میزدیم دانشجو سوار کردم تا اسکورت من سوار کردم سه صبح تا مثل خودم پیشتی و دکتر پنس سوار کردم که دکیشون توی بوینگ کار میکرد یکیشون این آدم های مختلف و این خیلی هم جذاب بود که این همه آدم مختلف سوال میکنم و به کسی هم جواب نمیدم. یه روزی ساعت 10 شب ماشینم روشن میکنم میرم سر کار. یه روزی هم حالا هفته صبح میام. اون استرسی که با به کسی جواب بدم. وقتی تو شرکت هستی، توی دانشگاه هستی، همیشه باید به یکی جواب بدی. که چرا خروجی ها اینجوری شده؟ چرا این رو نمیدی؟ چرا این کد جواب نمیده؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ یعنی تو مسئول اون کار هستی. تررسم از این کشور خصیده خوشبله بیدار به شامین طرف به مبز ببین میترام خیلصه برم احترام میبرم چیزی که واقعا من تو امریکای خارج گرفتم من تو ایران اصلا نمیگرفتم و دلیلی که داشت برفتم گیرون می بود که تو ایران نداشتم و اینجا گرفتم ولی دوست ندارم نمیدونم این دوست ندارم یه ترجیم میدم نصیحت نکنم بگم به هم دیگر احترام بذاری میترسم <متصفح> از اینجا بری و خونه برمدم به تو به آوار آو آواره به شو مملکتم دست تو باشه هی ها اگر ارتش مو هات نبندی چه دیوانه دیوان ببینت من خدا لحظه you share the identity